قصه ها و افسانه های مردم ایرلند، به روایت آیلین آفولین و ترجمه محمد گذرابای ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی به مدیریت محمد بوستانی، گوینده آرزو انصاری، Thank mm -hmm. you. آهنگر. روزی روزگاری در زمانی که به خوک سواین میگفتند و چلچله ها میان ریش پیر ها لونه می در شمال ایرلند آهنگری به نام رابین زندگی میکرد کرد که در ساختن گاواهن تخصص داشت اون موقع ها ایرلند محل تاخت و تاز موجودات کوچکی بود به نام جن که در کوها و تپه های شمال به وفور یافت می شدند. یه روز که رابین کار زیادی نداشت و به در مغازه تکیه داده بود پسر کوچیکی رو دید که با لباس سبز رنگ سوار بر اسب به مغازه نزدیک شد اون از رابین خواست که اسبش رو نل کنه رابین گفت اگه میتونستم با کمال میل انجام میدادم اما جز ساختن گاواهن چیز دیگه ای برد نیستم پسر گفت خب اگه اجازه بدی خودم اسبم رو نل میکنم رابین گفت خواهش میکنم پسر تبر کوچیکی برداشت، بیرون رفت، پاهای اسبش رو قطع کرد، اونا رو داخل مغازه آورد و درون کوره گذاشت. بعد آتیش رو زیاد کرد و بلافاصله پاها رو با یه جفت نعل تازه بیرون کشید. بعد بیرون رفت و پاها رو سریجاش گذاشت. از رابین تشکر کرد و سوار بر اسب دور شد. رابین فریاد زد: خدای من، اگه اسب رو اینطوری نعل می‌کنن، پس من هم حتماً می میتونم این کارو بکنم. اسب خودم به نل احتیاج داره و چون فعلا کاری ندارم بهتره اونو نل کنم و بیرون رفت پاهای اسبش رو برید اونا رو داخل کوره گذاشت و آتیش رو زیاد کرد اما چند لحظه بعد که پاها رو بیرون کشید به جای اینکه نل‌های تازه داشته باشه کاملا سوخته و از بین رفته بودن رابین با خودش گفت عجب فکر میکردم که این کار رو یاد گرفتم اما موفق نشدم حالا چه کار کنم چند روز بعد رابین به در مغازه تکیه داده بود و در فکر فرو رفته بود که همون پسر کوچک با کت سبز را دید که سوار بر اسب به طرف مغازه میومد در حالی که یه پیرزن جلوش و یکی دیگه پشتش بود پسر نزدیک رابین اومد و تقاضا کرد که از اون دو پیرزن یک زن جوان درست کنه رابین گفت من جز گاواهن دیگه چیز بلد نیستم درست کنم پسر گفت خب اگه اجازه بدی از وسایرت استفاده کنم خودم این کار رو بلدم رابین گفت با کمال میل مغازه من در اختیارته پسر از رابین تشکر کرد و پیرزن زن رو آورد و داخل آتیش گذاشت بعد از یه مدتی رابین در کمال حیرت دید که پسر به جای دو پیر زن یه زن زیبا و جوان رو از کوره بیرون کشید پسر سوار اسبش شد و رابین کمک کرد تا زن جوان پشتش بشینه اونا خیلی دوستانه خداحافظی کردن و رفتن. وقتی پسر رفت، رابین با خودش فکر کرد که میتونه این کارو انجام بده. گفت مادر و مادرزنم هر روز با هم بگو مگو میکنن. فکر کنم بهتره به جای اون دو زن احمق، یه زن جوون و خوب داشته باشم. بنابراین به خونه رفت و دو پیرزن رو به مغازه آورد. اونا رو تو آتیش انداخت و با تمام قدرت در آتیش دمید. اما چیزی نکذش که جون اونا رو گرفت و خاکسترشون کرد. رابین از بلایی که سر خونوادش آورده بود اونقدر وحشت کرد که پا به فرار گذاشت و تمام روز رو بیان که پشت سرش رو نگاه کنه یا بدونه که کجا میره بی بیوقف دوید سرانجام از زور خستگی تصمیم گرفت در کمر کوه بلندی که در حال عبور از اون بود توقف کنه اما همون موقع صدای سوتی شنید و سرعتش رو دوبرابر کرد تا به قله کوه رسید اونجا از نفس افتاد و نشست بلا فاصله پسر کوچکی با کت سبز اما پای برهنه بالا اومد و از اون پرسید که آیا به یه پسر نیاز نداره؟ رابین وقتی کمی به خودش اومد و فهمید که کسی اونو تعقیب نکرده گفت که نیازی به بچه نداره. پسرک گفت مسئله ای نیست. اگه حالا به من نیاز نداری شاید وقتی که مجبور به سفر بشی به دردت بخورم. رابین با شنیدن این حرف موافقت کرد که پسر رو با خودش ببره. بعد از اینکه مدتی با هم پیش رفتن و درباره چیزهای مختلف حرف زدند پسر گفت کار تو چیه رابین گفت من در کار آهنگری کمی تبهر دارم پسر گفت عالیه چون لرد سرشناسی در دوبلین هزار پوند شرط بسته که هیچ آهنگری در سراسر سر ایرلند نمیتونه کاری رو که آهنگر خودش انجام میده انجام بده و من فکر کنم خیلی خوبه که در این شرط بندی شرکت کنی و جایزه رو ببری رابین گفت، راستش من شانسی ندارم چون تنها چیزی که بلدم ساختن قطعات آهنی گاواهنه پسر گفت، خب من به تو میگم که چه کار کنی؟ با من به دوبلین بیا و بگو که برای بردن شرط اومدی و میتونی آهنگر لرد رو شکست بدی وقتی تو رو برای مسابقه بردن ابتدا میخوان که هنرت رو نشون بدی اما باید اونو رد کنی و به لرد بگی که افتخار شروع کار برای آهنگر اوست و هر کاری که کرد تعجب نکنه، اونو بی اهمیت جلوه بده بعد به من دستور بده و نترس چون من حتما اون هزار پند رو برای تو میبرم رابین از حرفهای پسر قوت قلب گرفت و امید به بردن چنین مبلغی باعث شد تصمیم بگیره که به دوبلین بره. بنابراین حرکت کردند و کوتاه زمانی بعد به شهر رسیدند. اونجا رابین به ملاقات لورد رفت و به اون گفت که میخواد به آهنگرش مسابقه بده. پس روزی رو برای مسابقه تعیین کردن و لورد به همراه تعداد زیادی تماشاگر جمع شدند. همه از ظاهر معمولی رابین و پسر بچه تعجب کرده بودند. از رابین خواستند که کاری انجام بده، اما اون آقلانه تفره رفت و گفت بسیار متاسف میشه اگه افتخار اولین هنر نمائی رو به آهنگر جناب لرد ندن. بنابراین آهنگر جناب لرد رو پای دم آهنگری آوردن. وقتی آتیش به خوبی آماده شد، آهنگر لرد در برابر چشمای متعجب هزار کاری کرد که گندم از کوره فوران کرد و در تمام مغازه پخش شد. اون وقت از رابین خواستن که توانایی خودش رو نشون بده. رابین طوری که انگار کار آهنگر هیچ اهمیتی نداره به پسرک گفت بیا، فکر میکنم چیزی شبیه این رو نشونت داده باشم. پسر پشت دم آهنگری رفت و دسته بزرگی کبوتر از کوره بیرون کشید. کبوترها هم تمام دانه های گندم رو خوردن و بعد ناپدید شدند. آهنگر دوبلین از اینکه یک پسر بچه اونو شکست داده سخت عصبانی شد و برای بار دوم پشت دم آهنگری رفت و این بار یک قزلالای زیبا از کوره بیرون کشید. ماهی درون رودخانه کوچکی که از کنار مغازه رد می پرید و از نظر ناپدید شد. رابین به پسرک گفت بیا باید آن قزلالا را دوباره برگردانی تا آقایان ببینن که ما هم میتوانیم از این کارها بکنیم. پسر رفت و یک سمور آبی بزرگ از کوه درآورد. سمور فوراً درون رودخانه پرید و چند لحظه بعد در حالی که ماهی را به دهان گرفته بود، برگشت و ناپدید شد. تمام حاضرین پذیرفتند که ادامه دادن این رقابت کار احمقانه است. بنابراین جناب لورد پول را به رابین داد و او خوشحال از کاری که کرده بود، همراه پسرک دوبلین را ترک کرد. در حالی که پای پیاده در جاده پیش می‌رفتند، پسر به اربابش گفت: الان بهت میگم که ما چه کار میخوایم بکنیم. پادشاه اسکاتلند سخت مریض شده و همه پزشکا جوابش کردن پادشاه اعلام کرده که هر کسی درمانش کنه یک کیسه پر از طلا و یک اسب بهش پاداش میده. تو باید لباس پزشکا رو بپوشی و پادشاه رو درمان کنی. رابین گفت خدای من، چطور میتونم اونو درمان کنم در حالی که بجز درست کردن گاواهن هنر دیگه ای ندارم؟ پسرک گفت نگران نباش تو باید خودت رو پزشک جا بزنی و درمان پادشاه رو به عهده من بذار. پیش از جدا شدن از تو هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم هرچند که در اولین دیدارمون فکر میکردی که به من احتیاجی نداری رابین بالاخره پذیرفت و اونا راه اسکاتلند رو پیش گرفتن طولی نکشید که به قصر پادشاه رسیدن پسرک به رابین گفت وقتی پادشاه رو دیدی دستور بده همه اتاقو ترک کنن و از پیش خدمت بخواه که یه دیگ پر از آب برات بیاره بقیه کارها رو بذار به عهده من بنابراین تو قصر اعلام کردند که یه پزشکی اومده از ایرلند هم اومده که میتونه پادشاه رو فوراً مداوا کنه رابین رو بلا فاصله پذیرفتن و اون هرچی رو که پسرک گفته بود انجام داد در اتاق و بست و بعد پسرک به کنار تخت پادشاه رفت سر اونو رو برید و تو دیگ پر از آب که روی آتیش قرار داشت آتیش انداخت. بعد قاشق شق از جیبش در آورد و با اون برای مدتی سر رو در آب حرکت داد. اقبت وقتی آب برای مدتی نسبتاً طولانی جوشید سر رو از دیگ در آورد و دوباره اون را رو روی بدن پادشاه گذاشت. پادشاه بلافاصله فاصله صحی و سالم از جاش بلند شد. همه از بهبودی پادشاه بسیار خوشحال شدن و رابین جایزه ای را که تعیین شده بود دریافت کرد. اون حالا پول کافی برای برگشتن به خونه داشت، بنابراین به اتفاق پسر راهی ایرلند شد. در حالی که در جاده پیش می پسر از پاش گله و شکایت کرد و از رابین یک جفت کفش خواست و گفت این تنها چیزیه که در مقابل خدماتش میخواد. رابین که خصاستش گل کرده بود و فکر می کرد همه پولا به خودش تعلق داره اصلا خیال تقسیم اونو نداشت و برگشت تا پسرک رو بزنه. اما پسرک، اسب و تمام طلاها غیب شده بودن و حتی یه پنی هم برای اون باقی نمونده بود چون هزار پوندی رو که در دوبلین برده بود هم در کیسه طلاها گذاشته بود. رابین از این اتفاق غیرمنتظره خیلی ناراحت شد. او همه چیزش رو باخته بود، اما به راهش ادامه داد تا به یه شهر کوچیک رسید. اونجا شنید که پادشاه انگلستان به همون بیماری پادشاه اسکاتلند دچار شده و برای درمان اون هم همون جایی ایسترا تعیین کردند. رابین فکر کرد که حتماً میتونه پادشاه رو درمان کنه چون به خیال خودش دقیقاً میدونه که پسرک برای درمان پادشاه اسکاتلند چه کار کرده بنابراین با ناخدای یک کشتی کنار اومد و اون خیلی زود رابین رو به لندن رسوند رابین اونجا اعلام کرد همون کسیه که در اسکاتلند اون کار خارق العاده رو انجام داده به لندن اومد تا سرورش رو به همون ترتیب درمان کنه رابین رو بلافاصله به قصر پذیرفتن و اون مثل دفعه قبل به پیش خدمت دستور داد تا یه دیگ و مقداری آب بیاره و بعد همه رو از اتاق بیرون کرد. رابین وقتی تو اتاق تنها شد درو در قفل کرد و بعد از بریدن سر پادشاه اونو توی دیگ پر از آب انداخت و دیگ رو روی آتیش گذاشت تا بجوشه. اما در نهایت تعجب دید که سر در آب جوش از هم پاشید و دیگه نمیتونست اونو درست کنه. مونده بود چه کار کنه که کسی در زد. اون فکر کرد که از ساکنین قصر پشت داره. فریاد زد هنوز نمیتونید وارد بشید. کسی از پشت در گفت اجازه نمیدی پسر پا به رهنت وارد شه؟ مطمئنم آسیبی به تو نمیزنه. رابین گفت آه دوست عزیزم دیدنت خوشحالم و بد دوید و در رو باز کرد. پسرک گفت اینجا چه کار میکنی ارباب؟ رابین گفت فکر کردم پادشاه رو به روش تو درمان کنم اما از عهدش بر نمیام و نمیدونم چه کار کنم. بعد پسر به کنار تخت رفت نگاهی به پادشاه انداخت آشق کوچیکش رو در آورد و سر رو در دیگ به هم زد و بعد اون رو دوباره آورد و روی گردن پادشاه گذاشت. طولی نکشید که پادشاه صحیح و سالم از جا بلند شد. خوشحالی مردم و ساکنین قصر از بهبودی پادشاه حد دو حساب نداشت. از رابین و پسرک یه هفته پذیرایی کردن. رابین جایزه رو گرفت و با پسرک خوشحال از بخت خودش راهی ایرلند شد. هنوز راه درازی نرفته بودن که پسرک از درد پاش گله و شکایت کرد از رابین پرسید که آیا پولی جفت کفشو به اون میده؟ چون دیگه نمیتونه پای پیاده سفر کنه رابین گفت با کمال میل هر چقدر میخوایی بردار تمام کیسه متعلق به توه و در واقع تو بودی که اونو بردی و اصلا قابل تو رو نداره پسرک گفت اگه دفعه قبل هم همین همینقدر دست و دل باز بودی تو رو تنها نمیذاشتم اما میخواستم چشماتو باز کنم و یادت بدم که تماع نباشی و حالا رابین می‌خوام از پیشت برم و تو دیگه منو نمی‌بینی وقتی اولین بار بر تو ظاهر شدم میخواستم در خوشبختی رو برود وا کنم این من بودم که مغازت اومدم و کاری کردم که مادر و مادر تو اسبت رو بکشی اما همه اونا زندن من اونا رو هم مثل پادشاهی که سرشو بریدی حفظ کردم حالا فکر می کنم که به همه چیز رسیدی این طلاها رو به خونه ببر. من اونجا تو رو با هر چی از تو گرفتم ملاقات میکنم. پسرک اینو گفت و ناپدید شد. رابین با آخرین سرعت به خونه رفت. پسرک بعد از اینکه به رابین آموزش داد چطور پولش رو خرج کنه ناپدید شد و دیگه هرگز اونو ندید. پایان.